دوم. ساختار دستگاه تفتیش عقایت. تا آغاز قرن سیزدهم کلیسا صدها سال بود که موارد جداگانه بدعت گزاری را تحت پیگرد قرار می‌داد حقوقدانان واتیکان مراحل سنتی دادرسی را مطابق قوانین حاکم بر کلیسا که قانون شر نامیده می‌شود رعایت می‌کردند مثلا مطابق قانون شر متهمان از هویت متهم کنندگان خود آگاه میشدند. محاکمات علنی بود و تنها انواع خاصی از شهادت در دادگاه پذیرفتنی بود خود کلیسا مجاز نبود سبب نقص عضو شود یا مجازاتی اعمال کند که به مرگ زندانی تحت بازجویی دستگاه تفتیش عقاید بیانجامد. اما حضور گسترده و پایدار بدعت‌گذاری در جنوب فرانسه، در ایتالیا و جاهای دیگر، روش‌های تری را در مبارزه با این خطر برای کلیسا ایجاب می‌کرد. روش‌های حقوقی که در طول قرن سیزدهم پدید آمد، روش سنتی برخورد کلیسا با بدعت‌گذاری را به نحوه چشمگیری تغییر داد. دستورات برای مفتشان عقاید روشهای جدید تفتیش به صورت چند کتاب مهم دستورالعمل تدوین کردید که تا امروز باقی مانده این کتابهای راهنما حاوی اطلاعاتی درباره های گوناگون از جمله دستورالعملهایی هایی در مورد سازمان دادگاه تفتیش عقاید راهنمودهایی در مورد برخورد با بدعتگزاران، روشهای اعترافگیری از زندانیان، قواعد مصادره اموال بدعتگذاران و مجازات اعضای خانواده آنها و حکمی درباره رابطه بین اختیار روحانی کلیسا و اختیار عرفی حکومت نسبت به بدعتگزاران است. تعدادی از کتابهای راهنما دارای اهمیت خاصی انگاشته می شدند. این کتابها مفتشان را که با موقعیت دشوار یا نامعمولی مواجه می‌شدند راهنمایی می, راه می از جمله نخستین و مهمترین این کتاب های راهنما رهنمود نامه تعلیف ریموند پنافورتی بود که برای مفتشان در بارسلون تدوین و در سال 1242 منتشر شد. روش های تفتیش عقاید تعلیف برنارد کوکسی کتاب دیگری بود که در سال 1244 منتشر شد. روشهای علمی تفتیش عقاید تعلیف جان سمپیری کتاب راهنمای دیگری بود که برای مفتشان ناربون در فرانسه نوشته شده بود. این کتابها و به ویژه راهنمای تفتیش عقاید از نیکولاس ایمریچ، منتشره در سال 1360 مجموعه کاملی از رهنمودها را برای تفتیشگران عقاید در سرتاسر سر اروپا ارائه میدادند. کتاب نیکلاس امریچ به ویژه مورد توجه بود. امریچ از حدود سال 1357 و به مدت تقریبا چهل سال مفتش کل آراگون بود. او هم در مقام مفتش و هم به عنوان گردآورنده قوانین مربوط به تفتیش عقاید بی نهایت فعال بود. کتاب ایمریچ گردآوری گسترده ای از روشهای تفتیش عقاید به همراه نمونه‌هایی از روشهای تحقیق خود معلف از بدعتگزاران و در خصوص بدعتگزاری است. ایمریچ در اعترافگیری از زندانیان سرسخت رکورد فوقلادهی داشت. و کتاب راهنمای او طی سالهای زیادی به صورت معیار باقی ماند و مفتشها مهارت خودشان را در برخورد با زندانیان در دادگاه های تفتیش عقاید با آن میسنجیدند. کار تحقیق از سوی دستگاه تفتیش عقاید معمولا هنگامی آغاز میشد که یک مأمور تفتیش عقاید و همکارانش وارد ناحیه میشدند که گمان میرفت. پناهگاه تعداد زیادی از بدعتگذاران باشد. احکام دینی و دوره های تمام ساکنان آن ناحیه به میدان اصلی بزرگترین شهر ناحیه یا مرکز دهکده اصلی فراخانده می شدند. این فراخان شامل همه زنان و مردان پسران بالای چهارده سال و دختران بالای دوازده سال می شد. سپس مأمور تفتیش عقاید برای مردم سخنرانی می‌کرد و به عنوان یک حکم دینی اعلام می‌داشت که او و همکارانش آماده اند در یک دوره مهلت یک ماهه یا شاید چهل روزه اعترافات آنها را بشنوند. همه ی کسانی که به دیدگاه‌های مذهبی اعتقاد پیدا کرده بودند که مطابق اصول ایمانی کلیسا غیرقابل قبول بود، بایست اعتراف میکردند هر کسی که مرتکب گناهان کوچکتری نظیر امتناع از حضور در آئین اشای ربانی قش در معامله یا عمل خلاف جنسی شده بود نیز باید اعتراف میکرد. از آن گذشته مأمور تفتیش از مردم انتظار داشت کسانی را که دیدگاه های داشتند، یا مرتکب گناهان کوچکتری برخلاف مشی کلیسا شده بودند، معرفی کنند. هنگامی که مردم گرد می آمدند، معمور تفتیش به آنها اطلاع می داد که اگر آنها داوطلبانه حاضر به اعتراف شوند یا اگر دیگران را لو دهند، مجازاتشان نسبتا سبک خواهد بود، اما هر کس که بعداً معلوم میشد مرتکب گناه شده بود و یا اطلاعات خود را در مورد دیگر گناهکاران پنهان نگاه داشته بوده، به شدت مجازات میشد. اینکه کلیسا از مزنونان به گناه اعتراف بگیرد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. چراکه هدف اعلام شده تفتیش عقاید کمک به مردم برای بازگشت به کلیسا بود. گناهکاران با اعتراف به گناهان خود و توبه کردن می توانستند مورد بخشودگی قرار گیرند. و مأموران تفتیش از روش ترغیب و تهدید برای واداشتن مردم به اعتراف به گناهان خیش در طول دوره مهلت سی یا چهل روزه استفاده می کردند. در طول دوره مهلت مأموران تفتیش معمولا در پشت صحنه باقی می ماندند. به قول تاریخدان فرناند هیوارد آنها ترجیح می‌دادند در سایه و سکوت پشت دیوارهای اداره مقدس کار کنند و تنها با کمک مأموران مخفی عمل نمایند که برای کمک به تحقیقات خود همراه می‌آوردند. این مأموران مخفی تحقیق که آشنا نامیده می‌شدند در طول دوره مهلت با مردم می‌آمیختند و می‌کوشیدند. ذره ذره اطلاعات متهم کننده ای را که میتست علیه بدعتگزاران مرموز به کار گرد گردآورند. دستگاه تفتیش عقاید به این آشناها متکی بود چون عقیده بر این بود که بدعتگزاران در پنهان کردن گناهان خود مهارت دارند. حضور آشناها در یک ناحیه در طول دوره مهلت، جفه بدگمانی و ترس ایجاد می کرد. در نتیجه شایعات رسیده از جاهای دیگر که تفتیش عقاید را با وحشت، بازداشتهای شبانه و شکنجه پیوند می داد، احتمالاً بسیاری از مردم را چنان وحشت زده می کرد که به گناهانشان اعتراف می و به همسایگانشان نیز تهمت می زدن. کسانی که به گناهان کوچک خود اعتراف می و مجازاتهای نسبتا سبک خود را نظیر حضور مکرر در عشای ربانی یا پرخیز از گوشت یا شراب برای یک دوره معین از سر می آزاد بودند که زندگی عادی خود را از سر گیرند. آنها می دیگر گناهی مرتکب نشوند و در نتیجه بار دیگر با دستگاه تفتیش عقاید مواجه نگردند اما کسانی که باز هم به راه گناه باز میگشتند در خطر مجازات های بسیار سختتر بودند بسیاری از مردم از دوره مهلت استفاده می کردن تا نه تنها به گناهان خودشان اعتراف کنند بلکه در مورد فعالیت های همسایگانشان چه واقعی و چه پنداری گزارش دهند. مأمور تفتیش به همه این گونه تهمت ها گوش می‌کرد و تصمیم می گرفت که کدام موارد صرفم بدگویی بدخواهانه است و کدام موارد در خوره تحقیق بیشتر است. آنها به تهمت های مربوط به بدعتگزاری با توجه خاصی گوش میسپردند سپردند. پس از پایان دوره مهلت کارکنان دستگاه تفتیش عقاید شروع به زندانی کردن کسانی می کردند که خود دستگاه تفتیش عقاید به آنها از جهت بدعتگذاری یا جرایم دیگر مظنون بود. همچنین کسانی که همسایگانشان در مورد رفتار نادرستشان گزارش داده بودند. در نظامهای غذایی امروزی، اصل بر براعت است. مگر اینکه که جرم کسی ثابت شود. در نظام مفتنی بر تفتیش عقاید شخص متهم به خلاف در امور مذهبی گناهکار تلقی می شد و بیدرنگ حقوق مدنی خود را از دست می داد. مزنونان به بدعتگذاری که از نظر کلیسا و دولت خائن به حساب می تسلط بر اموال خود را نیز از دست می دادن. همسر و فرزندان از تمام تعهدات نسبت به مظنونان به بدعتگزاری معاف و تشویق میشدند که با ترک فرد متهم بیگناهی خود را اثبات کنند. دستگاه تفتیش عقاید با فرض به گناهکار بودن شخص مظنون به بدعتگزاری را برای یک دوره نامحدود به زندان میانداخت. مردی که در سال 1301 در تولوز به دادگاه تفتیش عقاید احضار شده بود تا سال 1319 آزاد نشد هرچند که به خاطر هیچ جرمی محاکمه نشد زندانیان دستگاه تفتیش عقاید پنهانکاری بسیار شدیدی که فعالیتهای داخل زندان‌های دستگاه تفتیش عقاید را در گرفته بود بر برترسی که این نهاد بر دلها افکنده بود می افزود: شایعات مربوط به شکنجه بدنی، گرسنگی دادن و به طور کلی شرایط غیر انسانی در قرن چهاردهم در سرتاسر سر اروپا پخش میشد و در قرن بیستم هم هنوز تکرار میشد. کسانی که از این زندانها آزاد میشدند، سوگند یاد می کردند که هیچگاه آنچه را که در آنجا تجربه کرده اند فاش نسازند. و این بر رازگونگی و وحشت می افزود. مورد جیزو پیگنانتا یک زندانی دستگاه تفتیش عقاید در روم در اواخر قرن هجدهم مثال خوبی است. پیگنانتا به گونهی آزادی خود را به دست آورد و راهی آمستردام شد. او در خاطراتش نوشت که حتی از این محل نسبتا امن آنچرا که در زندان پاپی بر سرش آمده بازگو نخواهد کرد. چون هراس از اداره مقدس چنان بر روحش اثر گذاشته که حتی از فکر آن نیز لرزه بر اندامش می‌افتد بسیاری از زندان‌های مورد استفاده دستگاه تفتیش عقاید از لانه حشرات بهتر نبودند در سال 1286 یک مجری قانون یا مقام کشوری در فرانسه از زیاده رویهای مأموران تفتیش عقاید محلی به پاپ شکایت کرد و شرایط زندان را به عنوان نمونه ای از خلافکاری های آنها مثال آورد. برخی از این سلول ها چنان تاریک و بدون هوا هستند که زندانیان نمیتوانند روز و شب را از هم تشخیص دهند. و بدین ترتیب آنها در فقدان کامل و مستمر نور و هوا بسر میبرند برخورد شدید بدون اتهام جزایی. شرایط در حبس پیش از محاکمه، به قابلیت انطباق، تمایل مأمور تفتیش، توانایی خانواده زندانی در تأمین غذا، شراب، روانداز و دیگر نیازهای اساسی و شناعت جرم بستگی داشت. غالبا ثروت فرد در اینکه چطور با او رفتار شود نقش داشت مفتشان فاسد معمولا شرایط زندان را برای افراد ثروتمند سخت می‌کردند تا از کسانی که به داراییشان چشم داشتند اعتراف بگیرند به مرد یا زنی که به زندان تفتیش عقاید میافتاد هیچگاه گفته نمیشد که چه اتهامی متوجه اوست به فرد متهم اجازه گرفتن وکیل داده نمیشد. او حتی هیچگاه متوجه نمیشد که چه کسی به او اتهام وارد کرده است. از آن گذشته، به مردم اجازه داده نمیشد در جلسات دادگاه تفتیش عقاید شرکت کنند. همه این رویه ها نبود یک اتهام خاص، ناشناختگی متهم کننده، غیرعلنی بودن محاکمه کاملا مغایر قانون شهر بود. اما فتواهای پاپی که حاکم بر کار دستگاه تفتیش عقاید بود این رویه ها را مجاز می شمرد این عناصر کلیدی هستند که دادگاه های تفتیش عقاید را از دیگر نظام های قضایی متمایز می سازند سری بودن اقدامات پیش از محاکمه واقعی مردم را وحشت زده می کرد کلیسا امیدوار بود از این طریق در دل متخلفان احتمالی وحشت افکند و آنها را به کلیسا وفادار نگاه دارد. به افراد متهم فرصت داده میشد که از خود رفعه اتهام کنند. به آنها اجازه داده میشد به مفتشان ثابت کنند کسانی که به آنها اتهام زده اند برای نفرت از آنها یا حسادت نسبت به آنها داشتند. یا گمان میرفت از خانه خراب شدن آنها نفعی آیدشان می شود. اگر حرف متهمان باور می ممکن بود اتهامات علیه آنها منتفی شود. اما در مورد متهمان ثروتمند یا نامطلوب، غالباً حتی شهادت کسانی که آشکارا در پی منفعت شخصی بودن نیز به قوت خود باقی می مند. و در هر حال اگر اتهامات دیگر باقی میماند دستگاه تفتیش عقاید کار خود را آغاز می کرد.